ولم السيف ولم بسم الله الرحمن الرحيم اي انك نام تو بهترین سراغاز نام تو نامکی كونم باز بنام خدائي كي جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید ستایش و سپاس خداوندی عالمیان راست آن ذاتی که آفریننده زمین و آسمان است ذاتی که انسان را بیافرید آفرید و بر همه مخلوقاتش برتری داد خدایا سپاس برای توست که دین را شرع نمودی و سپاس برای تو که فرمان دادی و سپاس برای توست که آسان گردانی دی و سرنوشت نمودی درود و سلام فراوان نیثار پیام آوری رحمت و هدایت و نور برای جهانیان آن کی بشریت را از تاریکی های کفر و شرک و بت پرستی دین مقدس اسلام رهنمون فرمود و بر اهل بیت او که مشعل های هدایت و روشنی بخش تاریکی بودند و نیز بر یاران پاک او که حاملان وحی سماوی بودند و درود بر هر آن کس که تا قیامت بر منهج آنها گام بر می دارد برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز جمعه تاریخ 29 رمضان رادیوی صدای جندالله سی و برنامه هفتواری زبانی دری را خدمت شما تقدیم می نماید. خداوند زلجلال را سپاس گذاریم که به ما را را نمود تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم. بله همکاری عزیز به همین امیدواری می رایم به طرف داشته های برنامه امروزی. موضوعاتی که در برنامه امروزی ما گنجاش یافته قراری ز بیانه مولیس فاروق شهده و نصیحت‌های های ایشان در بخش مرواردی هفته موضوع منتخبی ما آداب سلام دادن و همچنان تحولات یک هفته سلسله اندرس ها ای که خواب آلوده و پس مانده از کاروان جهد کن تا باز یا بی خیش را در تو آن مردی نمی بینم که کافر بشکنی بشکن ار مردی هوای نفس کافر کش را آنگه از خواب اندر آید مردمی ای نادان که مرد چون شبان آنگه که گرگ افگنده باشد میش را خیش را خیرخواهی خیرخواهی خلق باش زان که هرگز بد نباشد نفسی نیک اندیش را آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است که آدمی را تنبل ارزد چوبیند ریش را راستی کردند و فرمودند مردانی خدای ای فقیه اول نصیحت گوی نفسی خیش را آنچه نفسی خیش را خواهی حرامت سعدیا گر نخواهی همچنان بگانه را و خیش را ای که انکار کنی آلم درویشان را تو ندانی که چی سودا و سر است ایشان را گنج آزادگی و گنج قناعت ملک است که به شمشیر مویسر نشود سلطان را طلب منصب فانی نکند صاحب عقل طلبی منصب فانی نکند صاحب عقل آقل است که ان کند پایان را جمع کردند و نیهادند و به حسرت رفتند وین چی دارد که به حسرت بگذاردان را آن به در میرود از باغ به تنگی و داغ وین به بازوی فرح میشکند زندان را دستگاه نک تشویش قیامت باشد مرغ آبیست چی انده شکلت طوفان را سعدیا عمر عزیز است به غفلت مگذار وقتی فرصت نشود فوت مگر نادان را الله قد وعده شهداء منزلتا مع النبیین في اعلا اعالیها رباه رباه ذاقت مهجتی شوقا الى الجنان فبلغها امانیها شهدا و نصیحت های ایشان معلوم می شود که کدام شهید دیگر در این هفته داریم بله این شهید برادر ما محمد می باشد که روزی چهارشنبه در ولایت بغلان در نتیجه عملیات شبانه نیروهای ناتو با یک برادر دیگر به اسم عبدالرحمن خوبیب به شهادت رسید و روزه های اخیری رمزان چه انسانهای خوشبخت بودند که در اواخر رمزان از دست یهود و نصارا به شهادت رسیدند. از الله تعالی امید داریم که شهادت این برادران ما را به درگاه خود قبول فرموده و جای ایشان را جنت الفردوس گرداند. و به ما نیز توفیق بدهد که راه ایشان را ادامه داده در اخیر مانند ایشان به شهادت برسیم. آمین یا رب العالمین. بله همکاری عزیز، به همین امیدوار میراییم به نصیحت های این شهیدی اعلیٰ گوش پرامیدی هیم حضار محترم در این عصر کنونی در این قرن آخر خصوصاً قرن که تمام مسلمان ها و تمام مظلوم ها و تمام انسان های مظلوم مستضعف مسلمان ها امروز در تحت تجاوز در تحت ظلم استبداد دشمن قرار دارند و حتی مسلمانان نمیتوانند در هیچ کج دنیا در هیچ منطقه‌ای نمیتوانند که به تمام puraz خصوصا بعلماء و بانانی که از احکام اسلام و اثریت معلومات دارن به آنها ضرور هستند تا ادای مسئولیت نموده و این احکام الهی را به این احکام الهی عمل نموده و ادای مسئولیت نمایند و از این ظلم و از این مظلومیت و Jakanah rahi nijat azin zillat, vahri nijat azin qanunikufri, taqd rahi jihal has, vahri qurbani has. Binaan ma az hamei ulamay mahteram, vah az hamei muslimin, vah az hamei tulab aziz ziki. Sadaimara meshnavan azinha xahesh و به خاطر قربانی کردن در راه دین اسلام و Az خاطر قربانی کردن به خاطر دفاع از احکام الهی و به خاطر نجات یافتن از این ذلت اونها هم به صف مجاهدین پیوسته به قربانی آمده شوند تا هنوز فکر که ما و کار دشمن تنها دشمن این دشمنان مکار، این دشمنان ظالم، امروز به همه مسلمانها تجاوز کرده ر هستند چی مسلمان مجاهد باشد چی غیر مجاهد، چی در مدرسه باشد چه در خانه، چی در سنگر باشد چی در کوچه در هر جایی که هستن مسلمانها را گیر میکنن با باانه های این و آن با نامهاي های آن به آنها ها توهیل می کنندن تجاوز میکنن. اگر ما بعد از این هم اگر به این کارهای خود به این، اگر غفلت خود اگر ادامه بتیم اگر از این مکر و دشمن اگر خود آگاه نکنیم در مقابل این مکر و فریبکاری دشمن اگر جواب نتیم اگر به قربانی دادن ما و شما اگر آمده نباشیم بعد از این هم من شما که اگر باز هم در مدرسه باقی هستیم در خانه باقی هستیم ما و شما را هم دوز بیاید گناه از مدرسه و از خانه ما و شما را هم برده در های خود ما و هم نگهداری بکنند علمای محترم امروز شما در سنگر jihad, در سنگر مقاومت در سنگر های قربانی شما میبینین که اولاد شما و شاگرد های شما و اونجا زندگی میکنن و به خاطر اعلای کلمات لا جان مبارک شده امروز اونها قربانی کرده رایستان اونها هم به مثل شما و به محبتي الله Rasulah, رسوله محبت الجهاد و محبت اسلام به همه اونها ترجی دادند فقط به خاطر محبتي الله به خاطر محبت رسول الله صلى عليه و سلام و محبت الدين اسلام امروز به قرباني آمدند امروز در مقابل این دشمنان دشمنان قسم مسئولیت علما مسئولیت اشخاصی که میدانن اونها هم مسئولیت زیادتر هستن باید کسانی که مسئولیتشان زیادتر هست بس اونها هم احساس مسئولیت زیادتر بکنن اونها هم به خاطر این دین به خاطر اسلام به خاطر قرآن، اونها هم باید به قربانی دادن آماده شوند. اونها هم به بندی شدن به تکلیف دیدن به زحمت دیدن باید اونها هم آماده باشند. تنها انسان نمیتونه به امت گفتن امت شود. Tahaa ihlan, nämä tänäbä musliman, kutsun musliman, boshaa. Käsin nämä tänäkemään muomin Islam bakhud, kurbani, Islam bakhud, fidakari, mekoha. Der zamani, agar bakhaturi, diinu, bakhaturi, islamu, bakhaturi, kalimatullah, agar ma ham, kurbani, Agar ma ham, bain, fidakari, agar amada, budim. Baz ma, khuda, musliman, hisab, kunim. Uddiger, musliman, musliman, harham. با اسلام و با ایمان دعوت کنیم حضار محترم زمانی آمده که حق با باطل تبادله شده مردم حق باطل میگه و باطله با حق تبادله کردند که چیزی که باطل هست او را حق میگن دیموکراسی و قانون اساسی که قانون کفری هست قانون هست که انها کفار جهان در یک جا جمع شدن اونها را ساختن ولی اون را اونها را قانون ایک میدانند که قانون به حق میدانن اونها را قانون میدانند که باید تمام اینسانها در زیر عیرقی این قانون در زیر سلته این قانون باید زندگی کنن و زندگی خود در زیر عیرقی این قانون کش برند. در حالی که این قانون قانون کوفری هست الله از زواجل این قانون نمیخواه و وجود این قان الله از زواوج در روی دنیا نمیخواهند بلکه الله از زواجل به معشما قانون قرلآ روان کرده. قانونی هست که از ابتدای نزولش تا به روز آخرت این قانون وجود داره که انسان ها حق برند و حق هر انسان مسلمان هست که باید در زیر این قانون اسلام روی زندگی کنند. اگر زندگی کردن در زیر بیرق کفری اگر درس و تعلیم در زیر بیرق کفری اگر عبادت و نماز خواندن طاعت و بندگی اگر در زیر بیرق کفری اگر جائز می بود در ضرورت بود که احکام جهات برای مسلمان ها فرض می شود. Allah azza wa jal nemi khaha ke dar yak ruhi zamin ya dar yak ham qanun kufri va ham qanun-e islamy dar Alhamdulillah dar har zaman inshallah din islam ghalib hast wa alihas hast inshallah din islam dar heich vaqt maghloob nemishe Allah azza wa jal ba jihad-e ma shoma ham zarurat nadare ba in ta'at va ibadat bandagi ma ham zarurat nadare faqat in jihad-e ma shoma in adaye masjed faqat sirf ba khatir-e khod الله عز وجل جل من جهد فإنما يجاهد لنفسه هر کسي جهد بخاطر نفس خودش جهد میکنه بخاطر نجات دادن نفس خودش جهاد میکنه مزهار محترم فقط در آخر پیام همه هست به همه خصوصاً به محترم خصوصاً به طلاب عزيز و خصوصاً به جوانان مسلمان ها در هر کنج دنیا هستن فقط امروز راه نجات از این و راهی azin از این بردگی و راهی نجات fakat این غلامی دشمن فقط یک راه هست که او راه جهاد هست فقط یک راه هست که و راه شهادت هست و راهی و الله و در اخر از این جنب به ها السلام علیکم ورحمة الله و برکاته تقدیم میدارم دعا میکنین که مميز همه اوقات و امید من هست ها و مجاهدان از دعای تن و از همکاری و از نظریه و از همکاری تن فراموش رب العالمين سبحانك اللهم استفرا الله لي ولك منا نسألك ليس موتي في حياتي مرة لما لا يكون ختامها استجداء لما سمت نفس الشهيد مقالبا على القذاه له المكانة عالية في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور وشادية مع أصفياء الخلق في فردوسها والأنبياء وصحبهم جيرانية وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف بادية تبع يفوز بها الشهيد كرامة إن كنت ذا لب فقل لي ما هي فالذنب يغفر عند أول قطرة وأرى المكانة في المنازل عالية والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة ومن القيامة ناجية متوجا تاج وقار وشافعا في بالقرابة قاصيا أو دانيا والحور ترقب في اشتياق مقبليا قبلة هي دائيا ودوائية طرف العيون لوجنتيها جارهم سكر الجمال بلحظها متعديا لما رأت عينا يلاحظ عيونها سكنت لذائد لحظها أعماقيا لما نظرت احترت في قسماتها أي الثمار ينال ثاري جانيا قد خيالا ما دنينا لوصفها صب الجمال على الكمال فؤيا صب الجمال على الكمال احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وانا أنص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول وما أسألك وأتمنى أسألك أن تردني إلى الدنيا فأختل في سبيلك عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة قال ويؤتى بالرجل من النار فيقول الله له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول أي ربي شر منزل فيقول فتفتدي منه بتلاع العرض ذهبا فيقول نعم فيقول كذبت قد سألتك دون ذلك فلم تفعل رواه أبو عوانة في صحيحه والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم في ديانة اسلام John Bazane, Raaj Hidayat, takipkunandagan Raaj Mustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bad. Ihäisiin mubarakaan. Sarahettaan taloudut mikunat. Ba Balazte, sharbte shahadat. As sharbte shahadat keder, lazte nokterin, neemet, baraj Musalman mei baat. جون شھہدا یہ کہ در تمام نعمت های نعمت های جنت اونها بهره مند میشن به شما Onan bega yagona orzu va tamannoy Muhammidski dar dunyo mora ot bikenan dar dunyo mora dubora rojikum madaroy tu jihad kunum va da martaba sharbat-i bor ma Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala unhu rivayat migunan Qala Anas bin Malik gofte ast Qala Rasululloh sallam Gufmega rasuri kuudosalla laha laja sallalla. Jota, bilra, gulimina, ale jannat, aurdanin shawat, mega jak mardi, ale jannat. Fajakuru lahu lahu, pasmigu jat alo tuala, balaya amo, mardi, ale jannat. Jabna Adam, eba tsayadam, kaifä vajaatan manzilak, kiratman paidakardi, manzilit, kutra, ale jannat. Fajakuru. Ittana ja Dan Miguet Airabib Harvardi Man. Khaira Manzilin. Wajattu Khaira Manzilin. Manzilin makomi. Kodrat biterin Manzil Darunit. Jannat dari oftum. Fayakulu, Fajakulu. Allah Fajakulu. Fajakulu. Fajakulu. Basī al-jannat meguhat wa mā as'aluka wa atamannī. Sawal nemikonam man astu, wa arzū ham nemikonam, lakin as'aluka an tarudda ilā dunyā. Sawal mekonam man inkī marā rahat konī, rujūb konane ilā dunyā basu fa uqta la fī sabīlik 'ashra marrāt. Pas shayad kardashaw man dar rāh-e to 10 bār. Ya'nī dar darūn jannat hīch ne'mat هیچ مقام و منزلت یعنی عزیزتر و لذت نوکتر برای جنتی از شربت شهادت کردن میباشد از این خاطر او رد بسی دنیا را از الله تالا سوال و تمنا میکنه و ده بار شهید شدن در راه الله را Yak ne'mat-i asraf-i ul-lutanan la zat noktrin ne'mat ast va ey barabar lima yara min fazl-i shahadat az ziat-i az shahadat shahadat hech ne'mat barabar shodanemidanam. Qalam Rasul-i sallallahu sallam min aal-i nar aur fiyaqulu lahu fasmeghiyat Allahu tabaara va taala mege bara yam aal duzakh ya ibn adam ey bacay adam kayfe wajadta manzilak ci rahim payda kardi manzile khudrak ya aal duzakh mege aya rabbi sharra manzilin battarin manzil daryaftum fiyaqulu fas Allahu tabaara va taala bala azi fataftadi minhu bi sala'il 'ardhi dhahaban Fas فیدیمتی تو منه از نه منزل و پوری از زمین از طلا یعنی زمین Bapuri فارغ اس و پوری Toki طلا فیدیمتی تا که از می منزل شرط نجات بدم فیاقولو پاسیار دوزخت میگه نه بلی من میقدر فیدیمتی از می منزل بت خود نجات قاتس aldı ka 2000 falan tafal azi kada kam tara muasasa wal kirdam urat dada natanisi igi wa puri zamin tilat fiya dada mitani ira khij nemitani ira durugh migitu qala al muallif fa allah anhu sahibi kitab ibn nahas rahmatullah alayhi fermat fa iza kana ahli al janna yatamanun ash pas ki jannat تمنا و ارزو میکن شهادت را و سوال میکن شهادت را و حصل حسلو علا ما حسلو عليه من الفوز العظیم در حالی که اونا حاصل کردن بران شیعای که بران نعمتهای که حاصل کردن برای جنت من الفوز العظیم یعنی سعادت بزرگ یک زندگی پر از عیش و راحت ابدی دائمی را kuin voimme tietää, että meillä on aina jokin tieto, joka on olemassa. on niin ei on niin Dar kalvi hit Bashar dar dunya kouter nakda. Uune matharam migea badus awarda ba uune matharasida. Baj ham migea saadat abadiran badus awarda israt karamat badus alijanati has. Tammamne matharik dili shmeeko ha jannat rahat bag puras.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 الآن میگه در دار مهنت ها و مشقت ها قرار دادن که دنیا است دغدغاری که پر از مشقت مشکلات پر از مهنت و غروب پر از فریبس داری است که انسان فریب بید و اعضان پر از Hei musulmanen, hei ihmiset, jotka ovat ruijameriessä ja joita on elämässä, joita on päädyttänyt saavuttamaan, he ovat niin, että heillä on elämässä niin paljon onnistumista, että he ovat niin, että heillä on elämässä niin paljon onnistumista, että ما شما هم مریم باید نعمت‌های دنیا با مادیات دنیا دل نبندین باید بشوابین به سوی شهادت به سوی کرامات به سوی عزات به shahadat سعادت ابدی دنیا و آخرت که شهادت است بغیر از ثروت شهادت هیچ نعمتی از نعمت‌های جنت برابر شده نمی‌تونه به در هر یک صحابه کرام اقتر عاشق شهادت بودند خردترین صحابه کرام وقتی که در غزوات خرد گفتگو را Onnaksi on käännetty, että on käännetty, että on käännetty, että on käännetty. Mutta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baraja Tamome, on matta, että on käännetty, että on käännetty. Ja sitten on käännetty, että on käännetty, että on käännetty, että on käännetty, että on käännetty, että on käännetty, että on käännetty, että on käännetty, että ف عقذوا سُم أقتلا سُم أخیا ف بار بار رسول الله صلی الله و سلم تمنا آرزوی شهادت کردگیس اگر شهادت بزرگترین نعمت لذت ناقترین شربت برای مومین مسلمان نمی بود البته رسول الله صلی الله و سلم تمنا آرزو نمی کرد رسول الله صل الله و آرزو از دو می شهاد کلام نیمگاهس voi ahlijennet asi haisi tunsutuneet, begras shahadat, hit chizir az Allahu Taala darxaasne milykona. Asi tunsutuneet, ki bni mati shahadat, hij niemat, hij niematay akhirat barabar shidanemidanat. Pss shahadat bilantirin mukamim manzilat baray muumin muslimanas. Shahadat lazatnak terin sharbat baray muumin muslimanas. Allah taqabbalat Allah baray har kasilatana milyfarmaad. Barki, vaan bandishkalla utala, kahasta vastat. Vaan, että me ilmoitaan. Sanoa, kun mä sanon utala, muttilas, noksharvat, shawatte, vaan, että me ilmoitamme, että me ilmoitaan. Pässä, ei muslimana, vaan, tämä on puras, taklif, gam, fasaad, shurur, vaan, tämä on tämä, mitä me teemme. Vaan, siinä on aikuisen Imrulus <favorable alla> dini <kufanduun> right? ma ziri payu kufar karal girifta rais, islam ziri paas, quran ziri paas, namus ziri paas, mukaddasat ziri paas, imrul bayat, maushma fikir kunem, as kudab bitersem, va huzuri Allah tabar va taala raftaniyasem, Allah tabar va taala az maushma tak tak sawal mekuna, ma chi jaw bayat, va khateri difa az dini, az namus, az bayat, maushma ba paq در مقابله ظالمان و تاریخ چیزیک باید از خود و از خود از دین خود باید ما دفاع نماییم اگر در اگر شهید میشیم نائل اگر شهید زنده بودین در میدان جهاد غازی هستیم برای داده پس بشتابید به شهادت شهادت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 اوسه جان نما رسو خداد امديشه و به سل مسير ميگه بد مرزه است جهنم بد مرزه است ميگه در دنيا جنتي بودن خود هم نميفهمد و دوزخي بودن خود هم نميفهمد در فتنه ها اوشب ها مبتلا است چه کس مينگه بادت کاروان و شهدا را پورنماید از امیر قلب سوار شهادت از الله تبار و تعالی بادت کنه وقت ثابت فی غیر ما حدیث عن النبی صلی الله علیه و و مفارقه ما هم فيه من النعيم شهدا مگر ارزو میکنند جدا شدن از اون نعمت هایی که شهدا به امن نعمت ها نايل شده جس از اون Poraš aish israt, poraš nimethaii daimi, azum muomen musliman ki bravat, hiskässä, derdellisine me, että duaara, derdyya, vaik doori musakat biet. Lakin, shuhada ithamana arthur amerikana mege. Käjänät me kuorisheom, käjänät me kuorisheom, käjänät me kuorisheom, käjänät me kuorisheom, Lemaa ja vajaadu min lazzatilkatilat vii se viralla. Azjatu onneki mega-shohadat mawġudio afsen. Az lazzatil-shohadat dal-rojaalla ja tala. Kidal-rojaalla ja tala, shohadat lazzat nokterin sharbatess. Ura mazzatil-shohadat, az dili-shohabar aftaginis. Azin khatur, taman-nordi-shohadat avikuna. Ja faz la-shohadat indalla Hazrat ane ke maujoodi afsan fazilat e shahadat dar nazr Allah biradara ke jihad Allah آزر پایمون خدا ما و شما پوره کنین الله الله راضی میشه والله ذات نوکرین شربت و شهادت را الله تعالی برای ما و شما نصیب بفرماین الله تعالی دیگر مسلمانانم توفیقی در حیات ما تمانا ای ارزو را دارن که الله تعالی دیگر مؤمنان و مسلمانان در این رايش قبول کنه شهادت برای اونها هم نصیب بفرمايت مروارید هفته زل الجود آداب سلام کردن نخستین بار که خداوند جل جلالهو دستور سلام دادن را داد وقتی بود که به آدم علیه السلام گفت که باید به با فرشتگان سلام کند در بخاری آمده است هنگامی که خداوند جل جلالهو آدم علیه السلام را آفرید به او گفت برو و به این فرشتگان سلام کن و ببین که چی جوابی به تو خواهند داد که این تحیت تو و ذریه توست سپس آدم علیه السلام سلام کرد و گفت السلام علیکم آلان همه در جواب گفتند السلام علیک و رحمت الله جمله و رحمت الله را اضافه کردند و نخستین بار که پیانبر صلی عليه علیه وسلم وارد مدینه شدند بیاران خود دستور دادند که سلام کردند را میان مردم شایع کنند و به آنان سلام دهند ابن ماجه از عایش رضی الله عنها به طور مرفوع روایت کرده است که یهودی ها به هیچ چیز شما به اندازه سلام و آمین گفتن و تان حسادت نمی ورزند. سلام کردن مستحب است ولی جواب دادن آن واجب و اگر بر جمعی سلام کرده شود اگر همه آنها جواب دادن که بهتر است ولی اگر یکی از آنها هم جواب دهد کافی است wa azbakhiya sarkit meshavat. Bihtarinjum labaroi salam guftan, as salamu alaikum wa al wa balakat tuhumi ebosat. Badaliri abu abuhuray raradrialla anhuri wayatkarda, kim mardi bar payambari kudas sallallahu alayhi wasallam guzarkard kidarjamar y nashastabudu goft, as salam alaykum, payamb bar sallahu alayhi farmud, baroyashdah hasana na سپس مرد دیگر آمد و گفت: السلام علیکم و رحمت الله. ایشان فرمودند: بیست حسنا نوشته می شود. سپس مرد دیگر آمد و گفت: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیامبر صلی الله عليه و فرمود: 30 حسنه نوشته می شود. و مکروه است با علیکم السلام شروع شود. چون پیامبر صلی الله عليه و سلام لا تقل علیکم السلام Fainn aliek salam tahiyetul mota, janne najuied aliek salam, chun in salami Murdagonas, Vakteki jam az yat baashan, mustahbas sebar salam Vaja agar meshkuk bud salami ura nasni dabashan, chun payambar salahu alaihi wa salam vakte salam mekard sebar salam mekard. Mustahbas baturi gam salam kard, janne ki taraf vaja پیانبر صلی اللہ علیه و سلم فرموده است این که فقط بر آشنا سلام کنند از نشانه های آخر الزمان است. همچنین روایته که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده است که مردی از پیانبر صلی اللہ علیه و سلم سؤال نمود که بهترین اسلام کدام است. فرمود تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف. یعنی این که اطعام دهید. و سلام دهید مردم را خواه بشناسید و یا نشناسید. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی که به بازار میرفت رفت به هر کس می رسید سلام می کرد. ابن ابی کعب به او گفت در بازار چی کار می کنی؟ شما کاری ندارید، خرید و فروش نمی کنید، از هیچ کالایی نمی پرسید و در مجالیس بازار هم نمی نوشینید. در جواب گفت، ای ابو بطن، و فیل مرد شکمو بود رفت و آمدی ما به خاطر سلام دادن است و به هر کس رسیدیم سلام میکنیم مستحب است کسی که وارد می شود ابتدا سلام کند و دلیل آن داستان آن سه نفر است که پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند و اولی گفت السلام علیکم سنت از کسی که سوار بر مرکب است بر پیاده سلام کند و کسی که راه می رود بر نشسته سلام کند و جمع کم بر جمع زیاد سلام کند و شخص کم سین سال بر بزرگان سلام کند و اگر دو نفر که هر دو سوار بر مرکب باشند و یا هر دو در حال حرکت باشند بهم رسیدن سنت آن است آن کسی که کم سین و است سلام کند و اگر موسین سلام کرد مأجور خواهد بود بدلیل قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که ابو هریر رضی الله عنه روایت کرده است یسلم الراكب علی الماشی والماشي على القاعد والقليل على الكثير يعني اي سوار بر بياده و بياده بر نشسته و جمع كم بر جمع الصغير على الكبير على القاعد على الكثير. Yani, اگر هنگامی به هم رسیدن، هر دو سلام کردن، باید هر دو جواب سلام را بدهند. شرح الهدایه شافعیه میگویند سلام کردن مستحب است، و اگر کسی را وکیل سلام قرار دادند، بر او واجب است سلام را بیرساند، چون او مأمور به ادای امانت است، وگر نه جواب سلام واجب نمی شود. در صحیحین از عائش رضی الله عنها، نقل شده است که پیانبر صلی اللہ علیه وسلم به او گفت، يا Isha, هذا Jibri Il, عليك السلام يعني yani, اي عائشه ان جبرائيل است سلام گفت السلام ورحمه الله بخاري لفظي و بركات هو را اضافه شرح مسلم آمده دليل و خوف فساد نباشد جایز است جواب سلامی کسی که سلام فرستاده و کسی که وکالت آن را به عهده گرفته مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و salam آمد و گفت این ابی یقرئک السلام فقال عليك وعلى ابيك السلام یعنی پدرم به شما سلام میکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در جواب فرمود بر شما و پدرات سلام باد و ابوذر رضی الله عنه گفته است چه هدیه زیبا و چه باری سبوکه اهل علم اختلاف نظر دارند بر اینکه آیا سلام کردن به زنی بیگانه جایز است یا خیر شاید بتوان گفت آنچه امام احمد رحمه الله آورده است راجح است که فرماید زن اگر سالمند باشد اشکالی ندارد به او سلام کرد ولی اگر جوان باشد اشکال دارد مستحب بست بر کودکان سلام کرد بدلیل روایت که انس رضی الله عنه روایت کرده که او بر چند بچه گذر کرد و به آنها سلام نمود و گفت پیانبر صلی الله علیه وسلم این چینین میکرد کرد در جایی که جمع خواب و بیدار وجود داشته باشد باید بر کسانی که بیدار هستند سلام کرد ولی باید صدایش را پایین بیاورد تا افراد خوابیده را بیدار نکند بدلیل حدیثی که مقداد ابن اسود روایت نموده که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام شب می آمد و گونه سلام می کرد که افراد خوابیده را بیدار نمی کرد. تنها به اندازه که افراد بیدار صدایش را بشنوند صدا را بلند می کرد. نباید به اهل کتاب قبل از آنان سلام کرد. بدلیل این حدیث, پی... حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلام که می فرماید Laatab da' uli jahudawen nasuora bissalem. Fa' idä la' pitum ahadahum fit tarir, fa' l-tarruhu ile alluja pihi. Jan edar salam kardan bajahudiħawa masiiriħa ġulawna jaftet. Wa' agar dar raah bajakia az' onharas idiet, ura batang nobi on dozet, ta' u salam kunet. Wa' agar noċar budit ki salam kunet, rajra salam immashurwa marrufra bigujit. Ma' nandi xastana ba' xit, و دیگر و اگر او سلام کرد در جواب بگویید وعلیकुम و بعد از آن اشکالی ندارد که از وضع حال او و خانواده اش پرسجو کنید همان گونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نیز این را اجازه داده است جایز است بر جمعی که شامل مسلمانان و مشرکین هستند سلام کرد منتها باید نیت سلام کننده مسلمانان باشد نباید با اشاره سلام کرد چون از آن نهی شده است بدلیل حدیثی که جابر رضی الله عنه به طور مرفو روایت کرده لا تسلموا تسلیم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والاكف والاشاره یعنی همچون یهودی ها سلام نکنید زیرا آنان با سر دست و اشاره سلام میکنند سلام کردن بر نمازگزار جائز و جواب آن از طرف نمازگزار با اشاره جایز است و این کار شوه معینه ندارد. زیرا پیامبر صلی اللہ علیه و سلم یک بار با انگشت جواب داده است و یک بار با اشاره دست و یک بار با سر بوده است ولی آنچه ثابت است جواب با کفی دست است. می توان بر کسی که قرآن می سلام کرد و جواب آن نیز واجیب است. نباید بر کسی که مشغول حاجت است سلام کرد. به دلیل که ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که مردی بر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و که او در حال قضای حاجت بود سلام کرد ولی پیامبر صلی الله علیه و salam به او جواب نداد مستحب است وقتی که آدم وارد خانه می شود سلام کند خواه در کسی باشد و یا نباشد از ابن عمر رضی الله عنه ما روایت شده که گفت اگر به خانه غیر مسکون وارد شدید باید گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین یعنی سلام و درود بر ما و بندگان صالح باد برای کسی که وارد مسجد می شود مستحب است ابتدا نماز تحیۃ المسجد را بخواند و بعد سلام کند ابن القیم رحمه الله گفته است از جمله هدایای پیامبر صلی الله علیه و سلام این است که هر کس وارد مسجد شد ابتدا دو نماز تحیۃ المسجد را می خاند و سپس بر مردم سلام می کند و به حدیث الموسی و او استدلال نموده است. برای کسی که روز جمعه وارد مسجد می شود، در حال که امام خطبه خواند و صدای خطبه را بشنود، درست نیست که بر مردم سلام کند و واجب نیست که جواب سلامی او داده شود. اگر سلام کرد و با اشاره جواب او داده شود، درست است. و اگر بر کسی که در پهلویش قرار دارد سلام نمود و با او مصافحه نمود، در اثنای خطبه در این صورت با او دست دهد ده ولی سخنه نمی گوید و بعد از اینکه خطیب خطبه اول را تمام کرد جواب او را دهد ده و اگر در اثنای خطبه دوم به او سلام کرد بعد از تمام شدن خطبه باید به با او جواب دهد ده از ابن عمر رضی الله عنهما نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و فرموده است من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجيبوه Yani Harkas Qabla Salam Kardan Suhanguft, Bau Jawab nadihit. Waas lovzli ibnadi, Rahimahulla Chin Amada, ebti da salam, wa baat sual, pasharkas qabla salam su al namut ba'u Jawab nadihit. Wa az Jabir Radulallahu alhubatawri Marfur nakul Sudahast, Kilat Vanulim Alam Yabda Bis Salam. Yani ba ba salam shu al na kunat, ijaza nadihit. سنت قبل از جدا شدن از مجلس سلام نمود. بدلیل این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم کمی فرماید اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فا اذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره یعنی هرگاه یکی از شما به مجلس رفت باید سلام کند و اگر خواست برخیزت باید سلام کند که سلام اولی از دومی برتر و مستحق نیست باید دستها را برای مصافحه و دست زدن کریم زد و آن را خوشبو نمود از ثابت بنانی روایت شده که انس هر روز صبح دستهایش را برای دست زدن با روغن خوشبو چرب می کرد در دست زدن و مصافحه بعد از فرایز از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سوال کردن، فرمود، دست زدن بعد از نماز سنت نیست، بلکه بدعت است. و عز ابن عبدالسلام گفته است، دست زدن بعد از نماز عصر و صبح بدعت است، مگر برای کسی که از مسافرت آمده باشد، بلکه اگر بخواهد مسافحه کند، باید قبل از نماز این کار را بکند، و مسافحه و دست زدن با کسی که از مسافرت برگشته است مشروع است، و پیانبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز اذکار و دعاهای مشروع را می و سه بار استغفار می نمود و سپس می رفت. مواردی که مخالف سنت می باشند، سلام نکردن هنگام ملاقاتهای نزدیک به هم و حدیث المسیع و او دلیل است برای مشروعیت سلام کردن در این مواقع. اگرچه ملاقات قبلی نزدیک بوده باشد، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین، حدیث المسیع صلاته را به باب تقسیم نموده و در آن آمده باب مستحبودن تکرار سلام بر کسی که ملاقات کردن با او در اوقات نزدیک و هم صورت گرفته باشد بدین گونه که بیرون رفته باشد سپس بلا فاصله داخل آمده باشد و یا چیزی میان آنان فاصله انداخته باشد مانند درخت و امثال آن تحیه ها و سلام های شرعی وجود دارند مانند گفتن مرحبا ولی بهتر و افضلتر آن است که بدنبال سلام آورده شوند چون به تنهایی جای سلام را نمی و اما دلیل این که مرحبا یک تحیه شرعی است روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده وقتی که وفد عبد القیس نزد پیامبر صلی الله علیه و وسلم آمدند پیامبر صلی الله علیه و وسلم فرمود مرحبا بالوفد الذين جاءوا غیر حزايا ولا نداما یعنی ای وفدی که بدون پشیمانی و سر افگندگی آمده اید، خوش آمدید. آنان نیز گفتند، ای رسول خدا، ما طایفه از قبیله ربیعه هستیم که میانی ما و شما قبیله مزر قرار گرفته اند و نمی نزد شما بیاییم، به جز در ماهای حرام، به ما چیزی را دستور بدهید که به وسیله آن داخل بهش شویم و تا به وسیله آن افراد دیگری قبیله را هم دعوت کنیم. وذا الحديث صحيح ام ذاك فرمود Atar Rajulul الرجل القوم فقالوا مرحبا Bihi به يوم يلقى رب يعني هرگاه کسی قوم آمد گفت در روزی که با پروردگارش ملاقات خواهد نمود به او خوشامدگویی خواهند گفت از جمله مواردی که بعنوان خوشامدگویی عملی و هم دیگر بوسیدن است اما مصافحه در حدیث صحیحه که انس روایت کرده و میگوید هنگامی که اهل یمن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن آمدند پیامبر صلی الله علیه و فرمود اهل یمن پیش شما آمده اند و آنها نخستین کسانی بودند که مصافحه کردند ابو داود رحمه الله و غیره روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه دو مسلمان به هم بیرسند و مصافحه کنند از هم دیگر جدا نمی‌شوند تا اینکه خداوند هر دو را زد. و انس رضی الله عنه روایت کرده است که مرده گفت ای رسول خدا یکی از ما اگر به دوستش رسید آیا میتوان در برابری او خم شد آن مرد گفت که پیامبر در جواب فرمود خیر آن مرد گفت او را در آغوش گیرد و او را ببوسد فرمود خیر گفت با او دست بزند فرمود بله اگر دوست داشت همچنین مستحب است هنگام مصافحه دست را پس نکشید تا اینکه دیگری آن کار را بکند با دلیل روایتی که انس ابن مالک رضی الله عنه روایت کرده و گفته است هرگاه کسی با پیامبر صلی الله علیه و وسلم روبرو میشد و با او دست می داد، پیامبر صلی الله علیه و وسلم دستش را پس نمی‌کشید تا او دست را عقب آورد. اما معانقه، ان این خاصه سفر است و برخی از اهل علم گفتان معانقه در غیر سفر هم جایز است اگر مدت غیبت زیاد طولانی شده باشد و یا اینکه زائر دارای وجاهت و مقام باشد که این را بطلبد و برای این استدلال کرده ان بر روایت که ترمذی رحمه الله در شمایل و غیره روایت کرده که پیانبر صلی الله علیه وسلم به منزل ابو تیهان یکی از اصحاب آمد وقتی که دید پیانبر صلی الله علیه و سلم به خانه او آمده با او معانقه نمود در حالی که خانه او در مدینه بود و اما همدیگر را بوسیدن اهل علم گفتن باید سری همدیگر را ببوسند. و اما بوسیدن دست برخی از علماء آن را مکروه دانستن شیخ الاسلام رحمه الله از برخی از فقها ها نقل کرده است که آنان بوسیدن دست را سجده صغرا مینامند ولی بوسیدن صورت و لب را ممنوع دانستند و مخصوصاً اگر این کار منجر و تحریک شهوت گردد تحریم آن مؤكد خواهد بود پس آن چی مشروع خواهد بود بوسیدن سر است برخی از علماء بوسیدن دست افراد فاضل و بزرگوار را جایز دانستند اگر به خاطر متدین بودن آنها باشد و بوسیدن دست غیر از اینها مکروه است و نباید دست افراد جوانان بیمو، و کوسه را بوسید خصوصا اگر منظر زیبا داشته باشد در حاشیه فتاوای امام نواوی چین آمده اگر خواست دست کسی را ببوسد اگر این کار به خاطر زهد و تقوا و صالح بودن شخص باشد و یا به خاطر علم و شرف و مکانت دینی او و امثال این امور باشد نه اینکه مکروه نیست بلکه مستحب هم می باشد چون ابو عبید رضی الله عنه دست عمر رضی الله عنه را بوسید ولی اگر به خاطر ثروت و منزلت دنیاوی دست او را ببوسد، چنین چیز شدیدن مکروه می باشد. نه در عهد و در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم، و نه در دوران خلفای راشدین، چنین عادت نبوده که برای کسی بلند شوند. آنطور که عادت بسیاری از مردم این دوره می باشد، بلکه انس ابن مالک رضی الله عنه گفته است. کسی به اندازه پیانبر صلی الله علیه و سلم، نزدشان محبوب در وجود نداشت با این وجود وقتی او را می‌دیدند که تشریف می‌آورد کسی از جایش بلند نمی‌شد چون می‌دانستاند که پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را دوست ندارد ولی بعضی اوقات به خاطر کسی که از سفر برمیگشت به پیشوازش می‌رفتیم همانطور که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که به خاطر عکرما بلند شده است و هنگامی که سعد بن معاذ برای حکمیت در درباره بنی قرائزه رفته بود پیامبر صلی الله علیه و سلم به انصار گفت به احترام سرورتان بلند شوید و اگر عادت مردم این باشد که با بلند شدن به مهمان و یا به مسافر احترام بگذارند و در این حال با چنین مردم چنین رفتار نکرد فکر میکنند که حق آنان را پایمال کرده ای و این در حالی باشد که آنان عادتی را که موافق سنت می باشد ندانند در این صورت بهتران است که برای احترام بلند شد. چون این برای اصلاح بین مردم و برداشتن حقد و کینه بهتر است ولی اگر کسی که عادت سنت را بدانند ترک عادت آنان باعث ناراحتی و اذیت آنان نمی‌شود مستحب است کسی که به خاطر مانع نتوانسته باشد جواب سلام را بدهد بعد از سلام کند و بخواهد جابر رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را برای کار فرستاده بود و می سپس نزدی پیانبر صلی الله علیه و سلم آمدم و سلام کردم. ولی جوابم را نداد. در این حال چیزی به افتاد که خدا به آن آگاه تر است. در دل خود گفتم شاید دانسته از که تمبلی کرده ام. و دوباره سلام کردم. ولی باز هم جوابم را نداد. باز پیش از بار اول چیزهایی به قلبم افتاد. برای بار سووم سلام کردم و جواب سلامم را داد و گفت. بدین دلیل جواب سلامت را نمی دادم چون من نماز می و او سوار بر مرکبش و رو غیر قبله هم بود. برای کسانی که کرولال هستند و نمی باید هم لفظ و هم با اشاره سلام نمود. سلام کردن بر اهل قبور مشروع است. بخاری رحمه الله در الادب المفرد گفته است باب جواب نامه از ابن عباس روایت شده که گفت من گمان می کنم که جواب دادن نامه همچون جواب سلام حق است و الذي الَّذِي اعطَكَ سَوْفَا يُعِيدُ فَلَلْجُودُ يُفْنِي الْمَلَ قَبْلَ فَنَائِهِ وَلَلْبُخْلُ فِي مَالِ شَحِيحِ يَزِيدُ فَلَا تَلْتَمِسْ رِزْقًا بِعِيشٍ مُقَتَّلٍ لِكُلِّ غَدٍ رِزْقٌ يَعُودُ جَدِيدُ فَلَلْجُودُ يُفْنِي فناءه ولبفل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فللجود يفني المال قبل فناءه ولبفل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد اکنون رسیدیم به بخشی اخیری برنامه امروزی که در آن از تحولات یک هفته شما را با خبر می سازیم. روز جمعه 22 رمضان مطابق ده اگست. در نتیجه یک عملیات استشادی در ویلیت کنر چارتن کشته شدند. در این عملیات عبدالفتاح کارمندی محسسی بین المیلالی و سی اسکر بین المیلالی کمک به امنیت و یک فرد افغانی دیگر نیز کشته شدند. معاوین وزیر دفاع روسیه از امریکا خواست تا در مورد پلان دوم حضور نیروهای این کشور در افغانستان پس از سال 2014 توضیحات دهد. قرار از 130 هزار نیروهای رهبری آمریکا ط پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. با ولایت کندز می‌رویم. خبرهای موثق از این ولایت می‌رساند که در هفته گذشته در نتیجه انفجار یک مو برادرانی ما در منطقه عسقلان این ولایت یک تانگی نیروهای ناتو با 5 سرنشینش کاملا از بین رفته است. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در جنوب غرب ترکیه 5 به شمول 3 مامور روسی کشته شدند. این هلیکوپتر به منظور خاموش ساختن آتش سوزی از روسیه کرایه گرفته شده بود. روزی یک شمبه 24 رمزان مطابقه 12 اگست در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت لغمان ولسوالی ولسوالی علیشنگ این ولایت با چند محافظش کشته شد روز دوشنبه شمبه 25 رمزان مطابقه 13 اگست یک پلیسی افغان در ولسوالی اچین بلیت ننگرهار بالای نیرهای ناتو آتش گوشد در اثر این حمله دو اسکر نیروهای خارجی مجرح گردید و همچنان در تیراندازی متقابل نیز یک کارمند استخبارات حکومت افغانستان مجروح شده است گفته می شود که حمله کننده بعد از حادثه موفق به فرار شده است به گفته سخنگوی ناتو از آغاز سال 2012 میلادی تا حال نیروهای ناتو 27 مرتبه مورد حملات اساکری افغانستان قرار گرفته و در آن 37 عسكري خارجی کشته شدند مجاهدین حمله را به هده گرفته میگویند که حمله کننده از قبل با ایشان ارتباط داشته است با تاریخ مذکور حامد کرزی دست نشانده آمریکا به عربستان سعودی سفر کرد تا در آنجا در مورد وضعیت در سوریه و موضوع صلح همراه سران بعضی از کشورها صحبت کند. در نتیجه انفجار مین برادران ما در ولسوالی اشکمیش ولایت سخور هفت کشته شدند در میان کشته شدگان عبدلaziz خاروولی کمیش و حاجی هاشم یک از وی شورای صلح ولایتی شامل می گفته می شود که این افراد زمان کشته شدن که بعد از انفجار ماین برادران مجاهد ما بازماندگان ایشان را تحتغول لاری قرار دادند رقمی تلفات دو زلزلهی پیهم در ولایت تبریز ایران به بیش از 300 تن رسید بیش از 3000 نفر دیگر در اثر این زلزله جراحت برداشتند. بعد از ظهر شنبه 2 زلزله‌ای پیهم با شدت 6.4 و 6.3 درجه در حدود 20 قريه در نزدیکی شهری تبریز به خاک یکسان ساخت. روز سه شنبه 26 رمضان مطابق 14 آگوست است. در نتیجه حمله پایدرپای استشادی در شهر زرنج مرکز اولت نیمروز کم از کم 20 تن کشته و 48 تن دیگر جراحت برداشتند این حمله در نزدیکی یک تانک تیل اداره مستوفیات و یک شفاخانه دولتی رخ داد در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ولسوالی ولسوالی شغلانی ولایت بدخشان و یک فرماندهان پُسته سرحدی با چند محافظ دیگر به قتل رسیدند ان افراد زمانی کشته شدند که موتر حاملی ایشان در حال حرکت سوی فیضاباد بود و ماین کناری جاده برخورد کرد. روزی چهارشنبه و بیست و هفتی رمازان متابقی پانزده اگست. حامید کرزه دست نشانده آمریکا از پاکستان خواست است تا حملات دراکیترا بر خاک افغانستان متوقف سازد. کرزه این سخنش را دیروز در عربستان سعودی حین ملاقات با بیان داشت. در نتیجه انفجار یک بمب که در یک بویسکیل جاسازی شده بود در شهر حرات 18 تن زخمی شدند و همچنان در نتیجه انفجار یک ماین در والوسوری کاجکی ولایت خلمن چهار بزرگ قومی به قتل رسیدند می شود که این بزرگان قوم با حکومت ارتباط داشتند یک انفجار بزرگ در دمشق نزدیک به یک ساختمان نظامی و یک هотеلی که ناظران سازمان ملل متحد در آن بسر می بردند رخ داده است تلویزیون دولتی سوریه میگوید که این حادثه که در نتیجه انفجار یک بمب رخ داد، در آن نفر زخمی شدند. وزیر دفاع در سرحدات داخلی اسرائیل که از این مقام کنار می‌رaddWidget میگوید که اسرائیل در صورت تصمیم حمله بر ایران برای یک مو آماده جنگ می باشد یک روزنامه نگار اسرائیلی گفت که اسرائیل آماده روبرو شدن با به جنگ با ایران است. وی گفت که این جنگ امکان دارد اگر اسرائیل برای حمله به برنامه‌های اتمی تهران تصمیم بگیرد. روز ی پنجشنبه 28 رمضون مطابق 16 اگست در اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در ولسوالی شاهولیکوت ولایت قندهار یازده تن به شمول 7 سرباز آمریکایی کشته شدند گفته می شود که در میان کشته شدگان یک ترجمان و سی عسکری افغان نیز شامل میباشند در یک حمله بر یک پایگاه هوایی منهاس در ایالت پنجاب پاکستان حد یقل یک عسکری پاکستانی کشته شده است معین وزارت خارجه آمریکا دیروز واردی عزبکستان شده با قیموف در تاشکند ملاقات کرد وای همین اوکنون در عزبکستان است تا در مورد روابط آمریکا با عزبکستان بعد از سال 2014 بحث کند یک تیاره مسافربری روسیه دیروز در آسلند نشست استاضاری کرد گفته شده است که علت این نشست یک تهدید دیممی بود که در حال پرواز یک شخص تممای تلفنی به شرکت مسکر گفت که در داخلی تیاره بموجود دارد. گزارش ها از عراق می که در موج از حملات در این کشور حد اقل تن کشته و هفتات تن دیگر زخمی شدند. مگفته مقام های افراد در بغداد، شمال و غرب عراق کشته و زخمی شدند. به اساس گزارش ها از آغاز ماه اگست در نتیجه خشونت ها در سرت و سر عراق بیش از ست تن به قتل رسیدند. در نتیجه این یک ماینی که نارجادا در ولایت بغلان هفت اسکر ارده ملی کشته و سید یعنی دیگر زخمی شدند. این حالی سهنگا میرخوادد که موتر نیروهای ارده ملی در بغلان مرکزی به ماینی که نارجادا برخورد کرده است. و بالاخره در نتیجه عملیات شبانه نیروهای ناتو در ولسوالی برکهی ولایت بغلان، قماندان محمد مسئول در ولایت بغلان از سوی حرکت اسلامی ازبکستان، با یک مجاهد دیگر به اسم عبدالرحمن خوبیب به شهادت رسیده و یک مجاهد دیگر به نام خادیم زخم برداشته است. پایانی اخبار شنواندگانی عزیز، این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه دیگر همین شما را به خداوندی منان می‌سپاریم. سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو عیدتان مبارک صِرَ الشَّاشِ أَبِي زَمْجَر وَأَطْرِب مَسْمَعِي فِرَصَصِرَ الشَّاشِ أَبِي زَمْجَر وَأَطْرِب مَسْمَعِي فِرَصَصِرَ الشَّاشِ أَبِي زَمْجَر